كتب باشترين هاوري خواندناوي كتبو قران بنيو حكمتكاني نوسيندا كتبي چشدي مجاور نوسيني هجار مكرياني خواندناوي عميد علي مرکردنی دلیر سلین مرکردنی دلیر سلین مرکردنی دلیر سلین جوگرانی عزیز لبشی هفته و حوتی خواند نوکتی بی چشت مجاوری هجاری مکوریانی حتی نوالاتن فرمون لگل مندابن حجار مکرانی لباس کرنی ژانه مخوی بر دوام ده به تایبتی لو ساتانی ک لارادوی دنجی کوردستان عراق دا کاری کردوال لگل حاولانی ده حجار دنسه ترسولرز لورچ پیتر بوتا تیار شوانه ورز دهات نه نو کپرانو لیمان د خولاندن روجک تازه توسری کیوانی زرد حل دجرا پنس تیار خوتو خافل هات نه سرمانو بر تیر بارین قدمنه تجوان جوانم دیوه زردای اگری مشکن و به هندسه و رگ بماندهاتن کنه بتو سید صالح سرپرشت من فعلې گرتو چنقل کې کې کی حلقند کله آینده دا اگر تیارحات خویتې کی ده وشارین قل کې کې نشان منده که ام بوتوې قبر کې تنگی باریکی تاریک وتم صد جار به تیاره بکوجریم ناچمنه او قبره روزانه اچوم شنیکم پیدا کرد بول ناورازیک کس کسب ازانیم نازنیم به آسودهی دمنوسی تیارش نیدادیتم شعری برای مکریانم لیو تاوق کرد زورم شعر و مقاله بور رادیو دمنوسی قرار درابو برنامه‌ای که ترکمانیش منه به ماموست جلال عبد الرحمن یکی نوسی با خوی خندیا و بر روش برنامه زبط دکراو شوال رادیو گیومن لی دگرت و جلال زور خوب از لذان بو ندکره گالته دقل بکره کیومن لیگرت گتم خدایا بو خاطر ام مولودنام مباركة رحمك بکرد بكي همو پيکنينو جلال تو ربو دنجي لگواريم وسبه شو که پیکرد پيکرد بيدنگ دست من بو دعا حالينا و هيتمان نود بو خويل لفلقه پيکنيني داوتي برا رازده کن هر وقت مولودنامه اچه جعلا نانو چارو برای چشته کی سوار یانبرنچ کاملا خدرمنگور ناویک باین سازد کردیم راجانه یکی بیست فلز یعنی چوار قرن من خارجی ادراک کبشت تونو پرین اکرد. البیر نبکی اشوري من حقوقی بو 150 کیلو کلویک وزنی بو چوب و دنجی شر زبط کردند شوهدو زبطو رادیویی پی نبو. وتم ها ما ماست و توی تاریک بو زورترشم دبازیم و بیرم دهات لسر عز مرهای. سواری ایسترکم بو ما و زبط و راژیو کردن دو مندالی هش، نو ساله لوی بون وتم بچن هرکس دوزیه و ست فلسی دینی زورینه برد شتاکان انهینای و کل دم ره بجه مون بران دایدو جیان لکپرانداز احمد بو بو پنامان بگوندان برد کوملگ لعیمه چوین مرگی جوریک من پیدا کرد چوینگوری گاجوتان نان من دینه روشیک بانجان کردین و هر یک سی دیناریان دینی پکو پک لواخوشیا که عبدالخلق مدیر هندسه رادیو کمان رادیویی که خویف فروشت بهشت میریش پولمان نرد لخان گوشتومیو وادگای زریان هنر ججنه کی شاهنمان سازده جلال عبدالرحمن نرد باید وادگای کربو بالامنید خورده و لیمان قرض کرد که باید کاری نوا او دیگود دگل نهار و شام هر جا نیو استیکنده خواه دعای دو سالحیوسفی بانگی کردین کم سه دی نرد به سهود روا بمده هی هو سیدا حزم شکراوه حبیب محمد کریم وتی دلین لمرگی عرق خورا و تو راست یانه حاول کن سوین دی اند خوارد کشتی و نبو بدن بو جراو وتی وادیاره مستاجلال ویستوی گناه خوی پی حز دکم با سیک کاک عبد الخالق بکم او روج یمرم لدوست هر خوشویستکانم عبدالخالق فقيه بوب و تملا لسربازی کراوته امام تابور قاضی عسكر هر لبر و یو به اشتیا د سکاری رادیوی کړدو غیشټو رادیک فرستنده رادیوی زور به حسانی و نرخ کې زور کم دروست اکل رادیوی چې نیو کیلو واتمن به 50000 دینر کریب او کله کم جده بستر عبدالخالق رادیوی موجی ناو راستي لسیمو بوتری به تالو چن لامپ یک لیک ادا کاسر دینر تینا چول هم رجالات ناو راست د بستر لشورج در نردان بود شكوس لافاقيا. قلت بوين تو لهمو مهندسان ماهر تري. بلام لكارخانه كربكوش تي تازه فيربه. دوائي شش مان هاتوا. پینج مهندسي راديو من هبون کالخاريج خند بوين. دبو عبدالخالق فيريان کا. لملائيتي دا زورزانه بو كمتر ملاء لمجادلة دا دقل يان دبرد. اغلب گلتای با اقل و سوادیانده کرد و ملان نخوشیانده ویست. قد نم دیدن با پیکنین نبید لعشقی کردستان و آزادی خوازی دا سوتا بو. دنیا نبو. با گلتا پیامده گود آخر طول سربازی مردو شوتن او علمی رادوید لقینگی کامندر هیناوا. با همو هزو توانای خوی حتا شورش بو هر دا گل بو. وازی لماالو مندال هینا بو. با شورش کسی با که تربو. لشکانه کش ده هاتصاب ما لتران و چو المانيا زور لژیان نهومت بوو ل المانيا و راسچوب و بغداد ل فرودگاوتی من فلانکسی مهندسی رادیو شورج بو مو هاتوم اعدام امکن بلم اعدام نکردو هات و هولیرو استادو کان تلفزيون چاکرنو هي زربدا خو ل سال 1984 ل هولیر تیرور کراو براستی گورترین زیان ل کود بن که احمد توفیق لپشت گندی شیخان بچیه که او بو کانو آبی کی زور خوشی لابو هرچند لهامو بن که کن در هم برهمی زور بو کار زور بناره کی انجام درآبام احمد پیاپی کی زور بذار کو نمرات تبو زور درسیان دخند همیشه کاری نکرد کس ذاتی نبو لخد لعده نجار با دارتاشی پیدا کرد، هر کس هر سناعتی که با بکاو بحره بشورش زورجار میوانی ده بومو با تنظیم ورکو پیکی زورم دلخوش ده بو جارگلو جارانه لای بو، نرده بو لخانه گوش جوانه گیان کرده بو هر خوارد و رحمت من بو گازر ده نرد، لبنکه ده احمد و حوالان نیورو لسر جگر رکشه بون منیش لپاش خوششنه که احمد ناچاری کرده بومو، پیش م بتهای در پی له سر کم دانشت بم کابره کی دیهاتی ها تجربه کی کاکا او نخوشی غوتم برا اوانه به حساب مردون چونه هر له نخوش ده ترسی بو با پیکنین کابرش خرته کرد، یعنی قسای کی سیره لپاش ما و رادیو من غوستو بو کیوی گردم کاشکاوتی زور غوریت یادبو رادیو له اشکاو را. کارگرانش لأشکوتو کپرده جگه و یک اوتین له اشکاو خومن کردو کلینبر د کوم دیتا و دیوار کوم لا پیش کردو درګای کوم تیاخست او انده تنگ بو اگر ته در را د شوم کسي ترينه ابر د بوعدان شوم ک یک یک بهت بیا دیدنم نیوملینه قصر شایو ک لا فرانس مشوره حوال روز کلمرونی کلینبر دکه برو روت تنگو تاریخو چومسیل کی پر لا پولوم هنه مستقدرمانی دیدی تیم بسره وکردو در کوم داخست پاشتا وکسرم دایو دوودو پشکوشان جال جال و کو هلا پزیتی دم مردبو ل تدرک تختی نوست نبود فانوسیم هابو قدرت تشو درنگیک ل بر فانوس منو سیو ل سر درجک هلیفام نوستم بیانیک هستم رواني ماري كه بدرمانشل بوا هر هنديبوك روا بجي جوش ليجي و تسرجگا كم قرصي مني كوت و تسرو ل بنم لچی کندا که فلان جگه شایمرانی لیه بو به هزاران ماری لیکو بو بونه و براستی گردم شونیکی وابو که وکه خوالا پاتینهی که بور بو اوانده مرحبونه بیته و مرکانی شمو کورمر بابی باری سپی واشی زگزلی کلگزور باری که سرسی سوز بون که پیودان یک و یک و گمیشش فراغ نیوروشاو دچوین له اشکو تک نان بخوینه قط نه بوله کس من توشی مار نه به روز یک لبرتاو راک شابوم عبد الخالق هرای کرد کور هله مار پیته وعده هستم مر لا بردر کوا خزیه وتم کاکه بخوامن ظالم بوم جګر رواني اوم دا جير کردبو جارک بللامانی لکلنا بردګدا دستم به او دګیان کروانی مارک لو کو لوای بابا نه دور لبرانبرم برم پاپوکی خوردو وتم خاطر جنبه تازه تا کاری خوم نکم حل ناستم هر تماشا یک تر من دکرد تا او شرمی لمن کردو هېدی کا جګي خوی بو جهشتم لو ژیان وزرانه دا زور بی پخوري بو روز یک ځوانګاخه زور قلاومن بو هات کبرزنی نرده بوې جاور با دوکل تیار زانی بوین چوار تیار من حتا سر لده وتیان راکنو خوب شارنه و وتم هزار بمبام یکو دست لگوشت گوشت برنادم هر چي كرديان نبزوتمو گوشتي بشي خوم برجان بمباي ناپالميان پیدا دابو تختی فنري له اشکودا اشكودابو بونچينګي ګراسن لګرما توابو نو چن روزان بردي اشكوتي کرادوي تدابو ګري هر برزبو قصر شيوي منيش کس نه د زاني ایت ر تیاره فیروزون همون روز سریان دادن شوانش تیاره هر ل آسمان خویانده خورد و بمباین داپارن شهق دگال سیبیاش مرگا ل جلالابوین بود با قرمیت تیاره چرا کج بناوا در کوتین بروین من جغری دایر سوم بالیا و بو کابره یک جنی و کیداو خرایل ل چشم خنابم کجه وتم کاکافری دمو مم کجاه با شوکه زور تاریک بوم بر ریگا بگردیم هلگرای نوا چند جرق دکوتینو ترسی شبو بسر مرد عثمان سعیدی و یجاری رادیو برای دکراب بچه دنگی شر زب دکه. گر نزای خواست که مبادانی تو. دلشاد مسرف و توی. مامستا سعید. خوان کام مرگت ببینم. بالام قضا و قدر اگر نهاتی وا. لی فوسری نکت چلیب کین. اوش توی. دلشاد. بابو توبه بی. دلشاد و توی. دبرو یه خوانی وا. و من دو معنی پتوی کیشمنیه. خمیر روزانمان. بقال توجب سعده د. یک یک من نامه کې زور ناس کودل لزمان چې کې رواندوزی به نو رौनक سعید نصیبو عثمان لهمو برنامه یګدا خوشکرونه رواندوزی باز دکړت که کې کردی راست اواده به پیشمرگی به نو خدمتکار رادیو زور لازم پتر مون هر به کې د چولای حزب د بچو رادیو دغل عبد خالق شوچوې نقاش رشت کې ل برزان وهنا بو بغوریس بس تبو ده استا من چه لوابکم؟ او تم بینیره با رادیو، یه ما جیگه منزوره که خالید آغا حسامیش هاته گردیم با رادیو. چند شوی کل سفر داده بوم قصری شایوم دا بوید شو لبرفانوز کتیبی خوند بوا مارک لحوه و کتیبو نوپر تیبکی بایی راموه من دالک منجالک مستی با خالید آغا که محمود آغا نوه بای تنیا ناوی آغایتی دور به دور کردونی دوست داله منجل کم بو بتال که اوش پیوتوه سر اگبرو وروا قاپی نیه نشتوه تا سر منجل لیسی داو شش رو جان نخوش کوتوه داگل که اکسامی عبدالرحمن نیردرین بو لیو جل نو دشت که بسر چپمانی رابگین بیجه نیه بگررموه سر باسی حالاتوکان بو همدانو تارن ماموسته لطران خوژیاون پیشمرگی تریج لحمه دن، لپادگان کوکرانوه مشقی سربازی دکن که روژک دجی برزانی بیانوه میدن، جیشنی 21 ازر دبیه به شادومانی او روژک جمهوری محابت تیک چوا، جیشن بگرن دبیه تهرائی پیشمرگی دل سوست، چون او روایه اگر ام جیشن بگرن دبیه لحمو بی عبرو یک رسواتر بین، هاوکار من لوی و تبوی؟ دی جیشن گرتن چیا؟ بو عبرو هر وقت جناب تیم سر نصرالله فرمی، اگر اعلا حضات بفرمی وجود رشت هالسون، ای کن، دوای بصابون آو، ای شوین وصابون فرو، ایش آوانه ابروی کرد عتیان للاگرینگ بو قتبویان خوان ریج بگوناکین کی اشک قتبویانی وانو هندک هر لگل جواب بو نوا ملا جمل ریج بانی کلا سر زورش تیتر ترابو بو هرچن موت قاضی شورشور راجلیان کوتبو هتبو ترانوس هربخواب بو و پناهندو لرادیو دامز ربو راجل لحال شود دمروانی کیو رشایی کمدیت هتون زیگ بو آوا سفر نوی فایل بو کپی شو تیتر بو دبای محکمه وتم ها سفر خيرا وتي كاكا لها مدان رام كردوا هاتو موابا ما حاكمان بكانو بمكو جن وتم حالتان چونبو وتي حالي صغ بيش مرغيكما لناو منجلي دا عرزي جيرايو بادغان كماشي انتدا لنابو كوتو بو بشهيدي ماشينا مام هجار ناوي كيان لنابوين اوان داي بيه قلص بوم تاديان قددد قد هزار جون بباوك مادن وتم ناوي چي؟ وتي لابيرم نماوا وتم دلاور وتي نخير وتم چريك وت و تم جوان مرد و تی کره نخیر زو ارناوی کی پیز بو. و تم سفر او دم کمن لی ایران بوم بهی وین دا گود غیر نظامی. و تی آی دم خوش، راست ایجی، غیر نظامی زو ل جاش پیز ترا. من لداخ و حالاتم. دا گل که اکسامی روشنامی خبات اخباری کردستان وک مجلی که هفتان من دنوسی شو ل روش لبرچراغ زنبوری کارمند کرد بر روش دبو خول بر تیار وشیرین. کل بغدا و هاتبوم چاوم زور به حکم بو ل بیس 20 ساله چاکترم ده دی چاوم لشورش شوره زور کسب بو, بو دکتور پیوتم هموی ختای چرا زم بوریه کله زیک چاوتو بو ل برتنوسیوا حکمی چاوم نیواونیو هاتبو خوارو بیا عینک چمبونه دکرا لمبینه ده کله یو جبوین شویک باران د پاش نیو شوی درنگ چوار پیشمرگی بادینی خوینکرد کرد جوړ ده که اما به فرمان درویشبگی سروکمان پیوکمان گرفتو لارېګه هاتون لیان ستاندوینو امرې کشتمن پینه بو یوه دلین چی کاکسامی او تی امر روزنامه نوسین کار من بسره او کارانه ونې وتم به دا هیڅ ما وستن برون اوانه بکوجن که هاتون سره ته غار یاندا سامی او تی حق چی فتوای واده وتم کاکه اوانه د یاره زور خيارین اگر هیڅ غیرت ینهبا حبسیان لینداستاند نو وستيان بلنده چاپخانه او تی نه به شرط کن د یانوست پینه بسره ترسنوکی خو انده باله هروابو نشونه شرو چوبونا بنکی خوين گوندی لوجم جاري کیترج دیبو اویش لا سره بهاری سال 1965 دگل کاق نافیز کبسم کردو لا قصرې او بروجی کی برن هاتین لا می وسان سیلوه هاتبو بوار نبو. من بسواری استرلیام ده او تان زیک سنگم هاتو چی و نه بو استر بخنکه ګرام و نه 4 دور کوتینو ل پردی برگرکه پراینو یار من پیش که او تبوم استرکم لنزیک پوله سپیندرک لاقی چقن نہ روم به شغل تر کوت می به فایده بو کروانی مجنکی قله وقت ديال دیو روته خوید بانگم کرد دایکم منو استرکه توقان رای کرده پش دارنو استر ب فش فشق رویشت نہ بالات بسردهاتو شو ناو بسرد هاتو پنچکو داری دمچم نافیز هر هرای دکرد کنج دگین لیوگو اخری چرایک من بدی کرد منالک من د قلحاتو بر دینه ناغون بوینه میوانی شیخ رضای ګولانی او رجال جنگی بارانو تريده له اورازی وسان توشی لاوکاتین باریک او رنګ زرد بوخچه کیپیبو بوم حلګرد ګوتی خاتم لکرکوکو دسمو توشي پرای جنگل کاتین لاوکوتی لو سرکهاتم شولیره استراحتم نبو وتم ها دیار لدی بو یو کی چحب او توش رستاني ناسکی وتی نخیر دیگه چی؟ لیره لو لیرهوارو بارانم لیده باری ریگم نه ازانی چون مصر و داره زلامه نو اکتوشی ورد بم زور تر دبم جر جر دهات مخوار خوم راده جاند آم لیه بدکیو در چون موان نو لکو پو پیدر تاس بینه ولات رو بو او جا گوگرانی خوشویستو عزیزانو هگرانی برنامه ای کتیب باشترین هوره نرده حتی نکوتای بشی حفتاو حوتی خوند نوی ای کتیب چشتی مجوری هجاری مکریانی تا بشی کتر شوتن آرام جیانتن همیشه شادی و بخت وریده